اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا و آله الطاهری خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم بر روز بخیر عرض میکنم انشاءالله که از نعمت و صحت سلامت کامل و لطف الهی برخوردار باشید و از هر گونه آفتی هم انشاءالله به لطف الهی به دور باشید. ما خدمت شما در بحث حقیقت و مجاز مباحثی را عرض کردیم رسیدیم به نموزج، نموزج درس حقیقت و مجاز که سه تا هست رو براتون میخونم بعد وارد بحث اولمون که تقسیم استعاره هستش خواهیم شد اشان میفرماید که وقال عبو تیب هین مرز بل ما به مصر آقای عبو تیب متنبی این بیت رو گفته موقعی که مریض شده بوده به تب، تب نوبه گرفته بوده در مصر. موقعی که در مصر بوده و در خدمت کافور اخشیدی اونجا دوچار تب شده بوده، تب نوبه، تب شدیدی گرفته بوده و این بیت رو از عبیاتیه که در این زمینه سروده. بزرگترین چیزی که کمک به یک بیمار میکنه در اینکه بر بیماریش غلبه کنه روحیه است همونطور که نداشتن روحیه باعث این میشه که حتی کمترین بیماری هم بر انسان غلبه کنه چون سیستم ایمنی انسان رو تضعیف میکنه و انسان در مقابل اون بیماری به زانو بیفت متنبی هم همین رو بیان میکنه میگه فعین امرز پس اگر من مریض شده ام اگر من مریض شدم فعین امرز فما مرز استباری یعنی فلا بأس علیه مشکلی نیست. چرا چون فما مرز استباری چون استبار یه پای بالاتر از صبره. صبره صبر کرد، استبر شکیبایی کرد. فما مرز استباری صبر و شکیبایی من، پایداری و مقاومت من که مریض نشده گفته اگه معلوم بشه که من مریض هستم مشکلی نیست چرا چون صبر و شکیبایی و پایداری و مقاومت من که مریض نشده چون صبر و مقاومت من سالمه پایدار است و مقاوم پس من خوب میشم این فما مرز استباری این مامای نافیه مرزه فعل استباری فاعل این جمله الان جزای شرطه فهم گرفته ولی در واقع جای جزای شرط نشسته یعنی یه جمله حذف شده درست شد این جاش نشسته یعنی سبب حذف شده این اومده جاش یعنی اون مسبب حذف شده این اومده جاش این سببه ده. یعنی اینطوری بوده اگر من مریض شوم هیچ مشکلی نیست فلا بعسى علیه چرا فلا بحث چون فما مرز استگاری چون صبر و شکی من مریض نشد این بیت اول مثل اولش و این اهمم همم یعنی تب کرد اهمم یعنی تبدار شدم اگر من تبدار شوم و من تب کنم یعنی اگه من نیمار شوم و به دچار تب بشم باز فلا بحث علیه مشکلی نیست چرا؟ چون فما هم معتزامی اعتزام یعنی اراده اعتزام یعنی اعظم یعنی اعظم کرد اعتزام یعنی خیلی اعظم کرد خیلی سفت و محکم فما هم معتزامی اراده و تصمیم من آ، که تبدار نشده اگر من تب کنم هیچ مشکلی نیست چرا؟ چون اراده و تصمیم من پاورجاست و من با اراده ای که دارم و خوشبینی که دارم و با اون سلابتی که در وجود خودم هست خوب میشم فما همه اعتزامی الان نگاه کنید تو این مثل اول و دوم دوتا مثل همه امر امرز یعنی اگر من مریض بشم خب متنبی میتونه مریض بشه یا نه بله میتونه پس این امرز در معنای واقعی خودش انسان انسانم مریض میشه اما میگه فما مریض است تباری اما بیما شدنه استبار یعنی شکیبایی شکیبایی من مریض بشه این همچین به قول خودمون جا نداره چرا چون ما میدونیم که شکیبایی مریض نمیشه درست شکیبایی که مریض نمیشه مریض شدن مال کسیه که سیستم عصبی داره سلولهای زنده در بدنش هست اینها دچار ویروس میشه و مریض میشه استوار که مریض نمیشه خب برای استوار باید چی به کار می بود؟ باید میگو فما قله استواری قله با قاف قله یعنی کم شد میگن فعلا یعنی صبرش خیلی کم شده صبر کم و زیاد میشه شکیبایی و استوار کم و زیاد میشه یعنی آقا خیلی صبوره این آقا کم صبوره. درست شو؟ اما نمی‌گیم این آقا صبرش مریزه. این آقا صبرش سالمه. اینجا در واقع غلک فعله، فعله تشوی شده به مریزه که فعل دیگری است. خب؟ ما به چه وسیله اینو فهمیدیم؟ به وسیله قرینه استباری استباری قرینه شد چرا چون ما میدونیم مریضی نمیتونه برای شکی بایی ثابت شد. کم بودن شد پس قلعه تشبیش شده به بگیر قلعه شده به مرزه قلعه مشبه مرزه مشبهان به که مرزه حسیه دیگه آدم میبیندشم بعد مشبه هست شده مشبه هم به, به جاشت نشسته علاقه مشابهته دلت و تشبیه کرده به مریضی قرینش هم استواری پس از نوع استعارت چون علاقه مشابهته دوشو دومی و این اهمم اگر من تبدار بشم خب آیا متنبی میتونه تب کنه یا نه؟ بله متنبی میتونه تب کنه اما میگه فما هم اتضامی مشکلی نیست اراده من که تب نکرده مگه اراده و تصمیم تب میکنه اراده و تصمیم رو ما چی در موردش به کار میبریم سوست شدن میگیم ارادش سوست شده نمیگیم ارادهش تب کرده که پس سوس شدن تشبیه شده ببگید تب کردن همه پس فعلی که اینجا تشبیه شده بوده مشبه انحل فما انحل یعنی سوز شده منحل شده فما انحل اعتظامی اگه اینطور گفته بودی چی توش نبود مثل اون قبلی اگر گفته بود فما قل استباری چی توش نبود تشبیه شوردت نگیرد اونجا قله رو تشبیه کرده مرزه اینجا انحل رو انحل تشبیه کرده به همم تشبیه کرده به همم در درینه چیه اعتضامی قرینه اعتضامی حالا نگاه کنید توی متنی که خود ایشون آورده تو این غزلیه توی جدول برای اینکه بتونید این رو داشته باشید من میخونم که یه مقداری یه نکتهی هم داره که بگم چون برای بعد لازم داری میگه مرزه مجازه سبب چیه؟ یعنی اون که ما تشخیص دادیم که این مجازه که همون قلی نمارد میگه لعنل استباره نامی هم برز. زیرا شکیبایی که مریض نمیشه از این فهمید علاقه مشابهته خود چی به چی تشبیه شده؟ میگه شب به هر و, صبر. و سب کمی شب به هر و سبه به المرز شده به مرض. میگه چه رابطه هست بین کم بودن و مریض بودن میگن لمال کل،, کل من هما منت دلالت از زفت. چون هر دوتا دلالت بر زفت میکنه حالا تو کدومش آشکارتره تو مریض آه مریض دیگه حسیه وجدانی آدم میبینه خودشم درکش میکنه پس قرینه هم لفظیه است و یه استبای تو دو دومی همه مجازه چرا لعنل لع اعتزامه لا یهمو زیرا اراده و تصمیم تبدار نمیشه علاقه چیه مشابهت علاقه مشابهت شبه انحلال سوز شدن انحلال و لعزم به اصابت به شدن اراده تشویه شده به دچار شدن به تب چرا... چه ارتباطی از بین این ها و در واقع وچه شبر چیه میگه لما لکل من همامند تاثیر سیه هر دو اثر بد داره اثر سوء میگذاره خب حالا اثر سوء در تب بیشتر آشکاره یا در سوز شدن در تب پس بنابراین استار است قرینه هم لفضی است و اون هم اعتزامیه یه نکته اینا خودش یه درس خواهد شد توی درس بعد از درسی که خواهیم خوند بذارشو اینو یادداشت کنید استعاره از یک لحاظ که لفظ, مشت... لفظ مستعار استعاره از این لحاظ که لفظ مستعار جامد است یا فعل و مشتق و هر به دو دسته استعاره اصلیه استعاره اصلیه و استعاره طبعیه تقسیم می شود پس اگر لفظ مستعار جامد باشه لفظ مستعار جامد باشه بهش میگن استعاره اصلیه لفظ مستعار فعل باشه مشتق باشه مشتق مثل اسم فایل اسم مفعول مشتق باشه یا حرف باشه که اونجا خواهیم گفت حرفم میشناسید مثل حرف لام مثلا لام حرف, جد. حرف باشه بهش میگن استحاره تبعیه اینجا الان از نوع استحاره تبعیه بود چرا؟ چون دوتا فعل بود مرزه و همه درست شد اینو تیتر بحث خود ماست که انشالله خواهیم رسید وقتی اونجا خوندیم شما این مثال اینجا را متوجه میشید که چجور شده که این استاره تبعیه شده میفهمید به دلیل اینکه فعل بوده حالا اگر فعل باشه چه صورتی دارد و چه شکلی اونجا خواهیم خواند. دو نموزج دوم و قاله هینما انذر از صحاب و بلمتر متنبی گفته موقعی که ابر آسمان هشدار می داده به اینکه میخوام ببارم به و کان هم ممدوحه و اون هم همراه با سیف و دوله داشتن قدم می اون چه طبیعیه داشته با سیف و دوله خودش راه میرفته، رفته آسمان هشدار داده میخوام ببارم ببارم چه چجوریه؟ رد و برق این موضوع باعث شده که متنبی این در مده ممدوح خودش میگه تعرزلی از صحابو از صحاب یعنی این عبر آسمان اشاره کرد الفلام تعریف عهده گفته این عبر آسمان تعرزلی تعرزلی مثلا فرض کنید یه نفر یه لباسی بپوشه بیاد جلو آدم هی پز بده خودشو نشون بده به ما فقف کنه کنه اینو میگیم فلانن یه تعرزلی هی خودشو ارزندان به من میکنه یعنی ارزندان میکنه پس تعرزلی از صحابه یعنی چی؟ یعنی ابر آسمان هی ارزندان برا من کرد هی خودش رو بگید به ما نشون داد به من نشون داد تعرض لی از صحاب این عبر آسمان ای ارزندان برا من کرد وقت قفل نا و ما هم بهش توجه نکردیم هی اون به ما ارزندان کرد و خود نمایی که ما اهمیتی بهش ندادیم بهش توجه نکرد. قفل نا یعنی رجعنا و ما هم ازش رو برگردونیم برگشتیم اصلا قافله رو قافله بهش میگفتن به این امید که میره و برمیکرده وقد قفلنا فقل تو توجه بهش نکردیم برگشتیم اون هی زندان کرد ما بهش نگاه نکردیم فقل تو بعد من گفتم یکی یعنی گفتم به عبر آسانبه اون که داشتش ارزندان میکرد الایکه، الایکه اسم فعله یعنی تنحه یعنی ابتعید دور شو برو اسم فعله. بهش گفتم تنحه الیکه تنحا یا تنحا یعنی دور شد تنحه دور شد ابتعید برو کنار الیکه چرا؟ چرا گفتم برو دنبال کارت برا ما عرض اندام نکن برا ما شاخشونه نکش چرا؟ چون این معیه از صحابا زیرا من خودم همراه خودم عبر دارم میگه خودم با برو دنبال کاره من خودم عبر دارم همراه خودم اون سهاب اول حقیقت عبر آسمون بوده داشته انظار میداده که میخواد بباره اما این سهاب دوم حقیقت نیست که متنبی به اون ابر و میگه تو با دنبال کارت بابا من خودم ابر دارم تو داری میخوای به من عبر بودنت رو به راخم بکشی ما خودمو ابر هم رامونه منظورش از عبر کیه سیف و دوله خوندیم که انسان کریم تشبیه میشه به از صحاب به عبر پس اینجا سیف و دوله شده به عبر صحاب سیف و دوله هست شده صحاب جاش؟ نشسته استار هست. علاقه مشابهته صحاب به معنای سیفون در رجل کریم به کار لفته قرینه چیه؟ معی چون هیچ کسی همراه خودش عبر نداره پس این معلوم میشه که این عبر عبر مجازیه عبر واقعی نیست معلوم میشه عبر واقعی بگید نیست معلوم و ان نمیه از سهاب بعد ان از با معلف اطلاقی از صحبه بوده اشبفاب شده شده از صحها. نگاه کنید میگه از صحاب اخیر مجازه. چرا ل از صحاب و رفیقا صحاب نمیتونه رفیق و همراه انسان باشه معی باشه مصاحب باشه. علاقه مشابهت شب هل به حل به صحاب. تشویر شده ممدوح و عبر آسمان درست شد؟ مال کلایی ما منل اثر چرا به انسان کریم مثل صفا میگن ابر اطلام چون هر دوتا مفیدند اثر خوب دارند خب عبر آسمان اثرش وسیعه احیام میکنه همه جاره نمال ما من اثر نافه؟ در اینش لفظیه است و اون همه بارت است از معی اون باعث شد که ما فهمیدیم از صحاب به معنای سیف و, دوله و مرد کریم ببینم تمام شد الان نگاه کنید اینجا اون لفظی که ازداره توش شده صحابه صحاب اسم جامده این نوعش اصلی است اون قبلی فعل بود میشه طبعیه است که توی بحث تقسیم اصداره توی درس بعدی ماست و قال آخر شاعری گفته بلادی بلاد یعنی کشور من سرزمین من بلادی و این جارت علیه یعنی بسریه است اگرچه جور کرده است بر من اگرچه ظلم کرده است بر من عزیزتون عزیز است است سرزمین من برای من عزیز است اگر به من لطف نکرده بلکه بر من جور کرده الان بلادی مقتداس عزیزتون خبرش چون بلادم جمع مکسره جمع بلد دیگه مکسره درست شد عزیزتون مفرد مؤنثه شد خب اما میگه که بلادی و این جارت علیه عزیزتون بلاد عزیز میشه بلاد جور میکنه بلاد که جور نمیکنه بلاد زمینه گشت خشت و گل و آجره اونی که جور میکنه یا اونی که عزیزه کیه اهل بلاده آه اهل بلاده مشخظ شده نه اینجا بلادی گفته و منظورش بگید اهل بلاده یعنی اهل بلاد من همهشون عزیزند مردمان من همه عزیزند گرچه در حق من لطفی نداشتند و ظلمم به هم کردند خب بعد گفته و قومی اینجا قوم بله مردمان من و این زنو زنو یعنی بخیلو بخل کردن و قوم من و این زنو علیه اگرچه بر من بخل کردن کرامون جمع کریم کریمن. اگر از من بپرسن حاتم تا یا کجان میگم قوم من گرچه اینا به من یک ریال هم نداده این انسان ناسیونالیستی بوده نگه سرزمین من مردمانش عزیزند اگرچه نسبت به من لطف نداشتند اینها کریمند اگرچه به من چیزی ندادند بلاد گفته و منظورش اهل بلاده مثل اون که دو قرآن میگه وَسْعَل برادران یوسف به پدرشون گفتن وَسْعَل الْقَرْيَةَ لَّتِكُنْ نَافِهَا وَسْعَل یعنی اسْعَل الْقَرْيَةَ لَّتِكُنْ نَافِهَا بپرس اون سرزمینی رو اون شهری رو که القریه اون ای رو که ما توش بودیم یعنی اگه باور نمی کنی ما میگیم بنیامین از توی بارش ای رو در بردن و تهمت دوزی بهش زده شد و گرفتنش اگه باور نمیکنی کنی اسال برو بپرس القریه التی کن فیها اون شهری رو که ما توش بودیم خب یعقوب اون شهر رو بپرسه یا اهل اون شهر رو به قرینه اسال آدم میفهمه یعنی اسأل اهل القریته قریه گفته و اراده اهلش رو کرده اینجا بلاد گفته و اراده بگید اهلش رو کرده مشخص شده نه پس بنابراین محل رو گفته محل گفته و اراده حال در اون محل رو کرده محل گفته و, و اراده اونی رو کرده که در اون محل حلول کرده هست اراده مافل کرده کرده. کرده اینو بهش میگن علاقه محلیه حالا بهش خواهیم خوند اصداره بگی... نیست چون علاقش مشابهت نیست علاقش حال و محله این مجاز مرسله نگاه کن بلادی مجازه چرا لعن البلاده لا تجور زیرا بلاد که جور نمیکنه بلاد که عزیز نمیشه شد علاقه غیر مشابهته ذکرل بلاد رو ذکر کرده و اراده ها و اراده کرده اهلش رو فلعلا و عل تو عل و علاقه محلیت محلو گفته و اراده حال در اون محل رو کرده قرینه چیه که ما فهمیدیم بلاد اینجا به منظور اهل بلاده میگه بلاد قرینش عبارت است از جارت این جارت که جور کرده به ما میفهمونه که بگید جور کردن کار بلاد نیست همینطور عزیزتون عزیز بودن هم قوی بودن هم کار بلاد نیست کار مردمانشه خب این مجاز مجاز مرسله محلو گفته و اراده حال در اون محل بکر. خب تمام شد حالا بیایم سر درس بعدمون که استعاره رو میخواییم تقسیم کنیم و شما هم همیشالله همراه من این رو خواهید فهمید مبحثش هم اگر انشاءالله توجهتون رو کامل کنید به اینجا راحت میتونید بفهمیدش استعاره مثل تشبیه با لحاظ مختلف میشه تقسیمات متعدد کرد پس استعاره عبارت از مجازی بود که علاقش مشابهته یعنی علاقه بین معنای موضوع له و معنای مستعمل اونفی گفتیم مشابهت علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی مشابهت این علاقه رابطه مشابهت استعاره از این لحاظ که این تقسیم اول ها از این لحاظ که لفظی که در عبارت آمده است مشبه است و یا هم به به دو دسته استعاره مصرحه مصرحتن مصرحه یا تصریحیه مکنیه یا بلکنایه اینا دو تا اسم دارن اتفاقا اسم مصرحه مشهورتر از اسم تسریحیه است مکنیه و بلکنایه را هم هر دو به کار میبرن پس استعاره به چند دسته تقسیم میشه؟ دو دسته یا مسرحه و تسریحیه است، یا مکنیه و بگید بلکنایه است. از هر کدوم یک اسمش رو گفته تصریحیه رو گفته مسرحه رو نگفته آنی الاسطعارت و تصریحیت و یا المسرحه تو مکنیه رو گفته بل مکنیه تو یا کنایته. استعاره کنایه خب از آنجایی که داریم وارد بحث میشیم در جزبه میگم ها که بتونید متوجه شید، از آنجایی که استعاره همان تشبیه است. و منباب یا به خاطر مبالغه بیشتر چون نهایت مبالغه در تشبیه تشبیه بلیغ بود با هم خوندیم اگه بخواییم از اون مبالغه بیشتر کنیم به خاطر مبالغه بیشتر برست شد سراغ استعاره آمده ایم. اگر از ارکان تشبیه مشبهم به آورده شود و سایر ارکان حذف کردد و ما با قرینه لفظیه یا غیر لفظیه متوجه شویم متوجه شویم که از مشبه هم بهی که آورده شده است از مشبه بهی که آورده شده است اراده مشبه شده است یعنی مشبهن به به مشبه به بجای نشسته است یعنی مشبه به به جای مشبه نشسته است استعاره تصریحیه یا مصرحه تشکیل می شود تبصره چون از ارکان تشبیه هم به رکن قویتر تشبیهاست هم به رکن قویتر تشبیه است و به آن در عبارت تسریح شده است این استعاره را مصرحه یا تصریحیه میگویند پس چون روش یا تصریحیه چون اون رکنی که قوی در تشبیه اون بهش تصریح شده که عبارت هست از مشبه هم مثل مثل این که بگوییم رعی تو دیدم رعی تو اصدن یعنی شیری را رعی تو اصدن یحمل و سلاح یحمل و از یعنی چی؟ یعنی دیدم شیری را که صلاح حمل میکرد اصلحه حمل میکرد یحمل و سلاح الان اینجا به قرینه یحمل و سلاح که اصله حمل میکرد به این قرینه قرینه لفظیه شما میفهمید که یه اصد اسد واقعی نیست چرا؟ چون اصد واقعی شیر جنگلی هیچ وقت اصله به گولش نیست این رجل شجاع انسانه که سلاح حمل میکنه. پس در واقع ماش مردی رو دیدیم تشبیهش کردیم به شیر در جرأت بعد اون مرد و عدات تشبیه و جرأت که وقت شبه همه هست شده مشبه هم بابردیم ازش اراده رجلن شجاعان کردیم اصدن رو آوردیم ازش اراده رجلن شجاعان کردیم به قرینه یحمل و اینو این رو بهش میگن استعاره مصرحه یا استعاره تسلیم یعنی اگه بندازیش تو همین مثالو بندازیم تو لوله آزمایش این در میاد رعی تو رجلن که اصدن فل جرعته رجلن، شجاعا که اصدن فل جرعه. این بوده دیگه مرد شجاعی رو که مثل شیر بود در جرعه دو شجاعت دیدم بعد رجلن شجاعان هست شده کاف عدات تشبیح هست شده فل حذف هست شده اصد اومده جای رجلن شجاعا نشسته بعد دیدیم خمی یه قرینه لازم داره یه یحمل و سلاح رو به قرینه آوردیم یادتون باشه این مثالی که الان دارم میخونم تو متن مثالیه که با هم حل کردیم کتابون یعنی هاذا کتابن انزلناه و الیک این قرآن کتابی است که ما بر تو نازل کردیم لتوخر جنازه تا همه مردم رو بیرون بیاوری خارج کنی من از ظلمات الی النور میفهمیم که ظلمات اینجا منظور ظلمات نیست نورم نور نیست منظور از ظلمات یعنی زلالات منظور از نورم یعنی هدایت و ایمان زلالات تشبیه شده به ظلمات هدایت و ایمان تشبیه شده به نور هدایت و ایمان تشبیه شده به مشبع هست شده مشبعون به, به جاش نشسته قرینه چی بود ما به چه ای فهمیدیم اینو؟ به قرینهی بگید کتاب انزل الله و چون میدونیم کتاب هیچ موقع از تاریکی به نور بگید نه کتاب مثل چراغ نیست که روشن کنیم اینجا تاریک باش بریم بیرون نگاه کنید مثال رو دیدید دیدید که مثال قبلی خودمون بود راحتا فهمیدیدش حالا نگاه کنید توی قاعده درس میگه تو من المجاز اللغوی استعاره یکی از مجازهای لغوی است یعنی مجاز لفظی از مجاز لفظی مجاز لفظی استعاره بود و مجاز مرسل استعارش علاقش مشابهت بود مجاز مرسل علاقش غیر مشابه استعاره الاستعاره من المجاز لغوی. یعنی مجاز لفظی و استاره چیه تشبیهن تشبیه است که حذف و طرفه تشبیه که حذف شده یکی از طرفه اینه یعنی در واقع اینطور بگیم تشبیه که ذکر شده یکی از طرفه اینه یعنی یا مشبه ذکر شده یا مشبه به که من گفتم که تو استاره مسرحه و تصریحیه کدومش ذکر شده مشبهون به چون جز قوی تشبیه هم هست پیش گفتن مسرحه تسریح. فعلاقتها المشابهت و دائما استعاره همیشه علاقش مشابهت هست شرط استعاره اینه که علاقش مشابهت باش ویه قسمان استعاره دو قسمه تصریحیتان یا بگیم که چی مسرحتان که استعاره مسرحه خیلی بیشترم استعمال میشه کدوم استعاره مسرحه ویه ماسر رحفی ها به لفظ مشبهه اونیه که تصریح شده در آن به لفظ مشبهان به یعنی لفظ مشبهان به آورده شده با قرینه به جای مشبه نشسته که من جزوه گفتم نمیشی حالا مثال دوم نگاه کن مثال دوم اصحاره مسرحه دیگه 20 تا هم من مثال بزنم شما میتونید بیستا یکمیش هم داشته روشید اصحاره هستی همینه که خوندیم قال المتنبی و قد قابلهو ممدوهو و آنقه متنبی خب این شعر رو گفته در موقعی که ممدوحش یعنی سیف و رو به رو می آمده با هم رو در رو شدن قابلهو مقابل شده با ممدوحش و آنقهو و همدیگه رو در آغوش گرفتن معانقه کردن هم رو در آغوش گرفتم او این طبیعیه یه کسی دوستشو میبینه اون از رو, رو میاد بگید همدیگر در آغوش میگیرند خب معانقه کرد این سبب شده که این شعر رو بکن میگه فلم ار قبلی میگه من تا حالا ندیده بودم قبل از خودم ندیده بودم من مشل بهر و نحوهو. من تا حالا ندیده بودم کسی را یعنی امروز خودم را دیدم تا حالا غیر از خودم و ندیده بودم من تا حالا ندیده بودم کسی را قبل از خودم مشا بهرونه و او که راه برود دریا به سوی او میگه من تا حالا ندیدم دریا قدم بزند و برود به سوی کسی قبل از خودم امروز دیدم دریا قدم زنان میآید آید به سوی من از این مشا مشا یعنی راه رفت و نحوهو یعنی به طرف او راه رفت به طرفش آدم میفهمه که این دریا دریای واقعی بگید نیست چون برا دریا چی بکار میبرن جرا یجری جریان یافت ها میگه من ندیدم دریا گام بزند به سوی کسی گام بزنن ولا رجلا و تا حالا ندیدم مردی را هامنظور سیفالدولس مردی را که قامت و العستو مردی را که این صفتو داره ایستاده است معانقه میکنند با او شیران منظورش از شیران کیه؟ سران لشکر فرمانده ها بزرگ میگه تا حالا من مردی رو ندیدم که وایسه شیرها بیان یکی یکی باهاش هاش سلامتی کنن و معانقه کنن الان ما میفهمیم که یه الاست به معنای خودش نیست است یعنی شجاعان لشکر اینجا از کجا فهمیدیم از این قامت توانقه هون که استادند و با او معانقه میکنن با این آقا ایستادن و معانقه کردن کار شیران نیست مثل اون حمل سلا پس این است به معنای از شجاعان, شجاعان. همونطور که بهر اونجا حقیقت نیست چون بهر مشا نهوهو نداره بلکه بهر اینجا به معنای به گیت سیفوت دوله است رجل کریمه که رجل کریم رو تشبیه به دریا میکن همانطور که انسانهای شجاع رو تشبیه به شیرون فلم اره قبلی من ندیدم قبل از خودم کسی را یعنی من منحصر به فردم من اینو دیدم فقط که دریا به سوی او می آید شد؟ منظورش از دریا یعنی سیف که دریای کرمه و ندیدم رجلن اتو به جای منه و ندیدم مردی را یعنی سیفت دوله را که قامت تو آنقه و ال که ایستاده است و شیران با او معانقه میکنند منظورش یعنی شجاعان لشکر. خب این دوتا رو بیای توی بحث براتون بخونم این دوتا به میگه فی کل مثال منل امسلت سابقت مجازون لفتی توی این مثال هایی که ما دوتا خوندیم مجاز لغوی است. یعنی چی؟ یعنی ای کلمتون استوملت بی غیر معناها الحقیقی یعنی کلمه ای هست که در معنای حقیقی خودش به کار نرد فل مثال اول ملل امثلت از سلاسته مثال اول از ستا مثال گروه یک درست کتابون انزلناه و لتخرج الناس من الظلمات از ظلماته من نور فلم سال الاول ملل عمسلته از ثلاثت ال اولا ستای اولی یکش یشتمل و علا کلمت ای از ظلمات و نور مشتمل است بر دو کلمه ظلمات و نور ولا یقصد و بل اولا الا زلال باید بگه چون ظلمات این هم منظور از ظلمات نیست مگر زلالات ولا یراد و به ثانیته یعنی انور، نور الا الهدا و منظور هدایت و ایمان ول علاقت و و علاقه بین زلالات و ظلمات و بین هدایت و ایمان و نور و همچیه میگه علاقه مشابهت میگه ولقرینت و حالیتون قرینه حالیه است درسته که قرینه حالیه نبود قرینه چی بود؟ کتابمون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور تان سر لتخرج الناس از اون تیکه اول قرینه است با به اون قرینه فهمیدیم ظلمات به معنای زلالات و نور و به معنای هدایت ایمون قرینش لبسیه کار کنده و مثال دوم و بیت المتنبی یحتوی علی مجازات دو تا مجاز و ما یکیش بهره منظور سیف دل است، الظی گاددو بهی از رجل یعنی سف الدوله اون آقای کریم یعنی سف الدوله لعلاقة المشابهت علاقتل قرینه مع قری تو قریه مشا هو مشاه یعنی گام زد هو به طرف این آقا، گام زد و قدم زد به طرف این آقا و خب قدم زدن و گام زدن از کار و به طرف کسی رفتن، از کار انسانه، کار دریا، نیست دریا جرایجری جریان پیدا. و است جمع صد عتی به ها از شجعان جمع شجاب. عل علا... علاقتل المشابهته از استم اجازه شجعان شده به خاطر علاقه مشابهت من قرینت تو قامت تو آنقوه قرینم تو کردن کاره بگید شیران نیست کار شجعان است ول بیت الثالث مثالش که الان خواهم خوند قال فی مدح سیف الدوله متنبی در مده جناب آواه سرفو دوله اینطور گفته. اما ترا زفران حلوان سوا زفرن تصفحت فيه بیزوله هند و لِمَمی تصفحت فيه بیزوله هند و لِمَمُو بال لِمَمُو ات بجای بیز. ببینید ظفر یعنی چی؟ یعنی پیروزی لغاتشو بگیم حلو صفت مشبه هست یعنی شیرین تصافهت یعنی چی؟ یعنی با هم دست بدن معانقه رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی هم در آغوش بگیرن تصافهت یعنی با هم دست مثل این ببینید زینب و هند یعنی خانم زینب و هند با هم دست داد معنیس تصافه تصافه زیدون و عمرون زیدون هم با هم رست تصافه بیز الهند بیز جمع بیز هندم که هنده عبیز هندی یعنی چی؟ بیز الهند یعنی عبیز های هندی عبیز لقب شمشیره بهش میگوندن چون شون سیغل میشد به سفید درخشان میشد و بهترین شمشیرها رو هند می ساختن شمشیر هندی پس بیز هند یعنی فل هند شمشیرهای هندی لمم جمع لمه است لمه این قسمت دیجگاه انسان مویی که در میاد به این میگن لمه کن کاسه صد درست مشخص کاسه سر لمتن جمعش میشه لمم پس لمم یعنی کاسه سرها جمع لمتن این قسمت گیشگاه لمه است لمه ها خب این گیشگاه تا اون گیشگاه میشه کاسه سر دیگه قسمت بالای. سر حالا بهش کاسه سر جمعش لمم حالا نگاه کنید چی میگه بعضی موقع ها سیف و دوله به یه جایی لشکر میکشید. بعد مردم اونجا در مقابلش در می آمدن. یک جنگ سختی با اونها میکرد، اونها رو شکست میداد، کشته زیادی اونها میدادند و سیف و دوله پیروز می شد و اونجا رو فتح می کرد. بعضی موها هم مردم از ترس اینکه که قدرت سیف و دلار بعضی از اون سرزمینها ها می خودشون دستشونو میبردن بالا بگنه اما ما تسلیم شماییم ما اصلا زیر بلیط شما هرچی چی می خراج میدیم هر کاری میخواد میکنیم، دست از سر ما بردار بیا و خلاصه ما اصلا زیر دست تو اینم پیروزی بود بدون خونریزی تسلیم می شد درست شد در ها می بردم بالا باید کاری رو که با شمشیر میکرد اونها خودشون میامدن و انجام میدن متنبی میگه که تو مثل اینکه جایی اگر همچین راحت الحلقوم دستت بیاد خودشون بیان تسلیم شد و اختیارشون رو بسپارن به تو اینو پیروزی رو تو قبول نداری مثلا لشگر میخواد بکشی به شهر روم یکی از شهرار بری به جنگی هنوز راه نیفتاده مردم اونجا میان میگن آقا ما تسلیمی شنیده میخوایید به ما حمله کنی ما تسلیم ما هیچ ادعایی نداریم تا مردم اینو میگن تو حاکم برمون زرزمین میشی به جایی که بگی خدا رو شک. که بدون جنگ و خونلی زیبا این هم شد کار بی ارزه ها نگردن وایسن ما بیاییم بخوابونیم تو گوششون تا این کار ولی اگر یه جایی رو رفتی و مردم مقاومت کردند و زدی و نشوندیشون سرجاشون و شهر رو گرفتی و قدرتتون رو نشوند اه با با این پیروزی بهش چست این داره میکرد یعنی موضوع بکینه. میگه که اما تراز زفران آیا تو پیروزی رو شیرین نمیبینی؟ سه زفرند جز پیروزی که یعنی تو پیروزی رو شیرین نمیبینی جز پیروزی که این صفتو داره تصافحت فیهه دست داده است در اون پیروزی ها مصافه کردن در آن پیروزی فیهه میخورو به زفر سوا زفره این جمله صفته و اونا رابطش مسافه کردن در اون چی؟ بیز هند و لمن شمشیرهای هندی شما و کاسه سر دشمنان کاسه سر دشمنان در میدان جنگ شمشیرهای هندی شما مسافه کنند با کاسه های سر دشمنان پیروزی به دست بیاد این پیروزی رو شما قبول دارید میگید بخ بخ این پیروزیه پیروزی یعنی این آیا تو پیروزی نمیبینی پیروزی شیرین جز پیروزی که دست داده است در آن پیروزی شمشیرهای هندی منظور شمشیرهای هندی شما با کاسه های سر دشمنان یعنی این رو تو پیروزی خوب شاهد ما سره چیه شاهد ما سر تصافهت تصافحت. اینجا مسافه کردن مجازه ولی فعله ها فعله میشه اصداره تبعیه که مثل اون ها که خونی حالا باید چی میگفت به جای تصافهت بهش میگفت مثلا تصادمت برخورد کنند. تصادمت یا طلاقت برخورد کنن اگه گفته بود تلاقت تلاقا یا تلاقا تلاقی برخورد کردن تصادم یا تصادم و تصادم برخورد کردن اگه اینو گفته بود هیچ مجازی توش نبود ولی تصافت که گفته دست دادن این میفهمیم فهمیم مجازه به معنای برخورد کردن چی به ما اینو فهموند ما از کجا فهمیدیم تصافهت به معنای تلاقت و به معنای تصادمت از بیزل هند و من. الان اگر به جای بیزل هند و من بود مثلا فرض کنید زینب و هند تصافهت فیه زینب و هند چون زینب, زینب و هند میتونن دست بدن با هم قرینه لفظیه بیزل هند و من. پایین نگاه کنید بیز هند از سویف و من جم و و یه از و المجاور و شحمت ال که در کنار این قسمت نرمه گوشه که گفتن در کنار گیجگاه که گیسو باشه ولی اون ولی اینجا منظور یعنی کاسه سر و المراد و به ها هنا منظور اینجا سرهاست کاسه سرهاست می‌گوید لا تنل انتصار لذیزا تو پیروزی رو لذیذ و خوب نمی‌بینی قبول نداری پیروزی شیرین است الا مگر بعد معرکتن الا بعد از یک جنگی که تتلاقا ببین تتلاقا ها. تتضادم مگر در یک جنگی که برخورد کند فیها در اون جنگ از شیوخ و به روز شمشیرهای شما با سرهای دشمنان حالا نگاه کنید توی متن بل به تثالث یخوی الان مجازن و اوت تصاافه، الظ یا را دومن و طلات یا تصادمت فعل... ول و علاقت مشابهول غرین و بی هنده و نمی من شد بیز هنده و میگه مضا؟ حالا و ازا تعملت کل مجاز سبق اگه به تمام این ستا مثالی که مجاز بود مجاز استعاره از نوع مسرحه که مشبهان به توش تصریح شده بود نگاه کنی رأیت انهو بود تشبیها من میبینی که اه ای یک تشبیه خلاصه شده است در زمن خودش داره تشبیه رو خوزفم این ها لفظ المشبهه که لفظ مشبه هست شده ادات تشبیه هست شده و شبه هست شده مستوی بدلهو لفظ مشبه بهی بعد مشبه به آوردیم به جای مشبه نشوندیم چرا یقوم مقام او اومده تا جای مشبه بشه بابا چرا این کاری کردیم میگه مبالغه است دیگه دعا عن المشبه بهی و عین المشبه ما اسد آوردیم جای رجل شجاع نشوندیم بحر آوردیم جای رجل کریم نشوندیم ها به این که بگیم اصلا ما رجل کریم نداریم دریاز مبالغه است چون توی تشبیه که نهایت مبالغه در تشبیه بلیغه در تشبیه بلیغ باز مشبه و مشبعان به هستند تو کلام یعنی یه دوگانگی دیده میشه خلاصه میگیم زیدون زید نرزادون زید از اسادن هست اما در استعاره دیگه مبالغه رو بیشتر کردیم اصلا میگیم ما زیت ندیدیم ما شیر دیدیم شیر رو میاریم جایه زیت رجل شچار. ما خود دریا رو دیدیم بعد یه قرینه میذاریم که بگیم دروغ نیست این منظور دریای مجازی است میشه استعاره پس ادعا کردیم به این که مشبه به عین مشبع جای به کار برد بهواذا ابعد مدن فلبلاغه این منظور از بلاغت یعنی مبالغه و این نهایت در مبالغه است یعنی از تشبیه بلیغ مبالغه بیشتره این ابعد مدن ذلبلاغته و ادخل فلمبالغته درست شد بحث تفسیریه و خیلی هم بیشتره. دخیل مبالغه بیشتره داخل در در و یاص محاضل مجاز اینو استارتتن بهش میگن استاره وا ماکانال مشببه و بهی مسررح هم بهی چون مشبه هم به بهش تصریح شده فی حاضل مجاز در این مجاز صبح می استارتتن تصریحیت او مسرتا بهش میگن استستاره تصریحیه یا مسرح خب حالا بریم سر استعاره مکنیه یا بل کنایه استعاره مکنیه یا بل کنایه خوب توجه کن اگر در تشبیه از ارکان آن مشبه باقی بماند و سایر ارکان تشبیه آورده نشود حذف شود مشبه بمونه مشبعون به ادات تشبیه و شبه شد شود یا مشبّه واقع ولی یکی از لوازم خاصه مشبعون به ولی یکی از لوازم خاصه مشبهن به آورده شود و به مشبه نسبت و اسناد داده شود استعاره مکنیه یا بلکنایه به دست می آید درست میشه. یعنی مشبه رو داریم یکی از لوازم خاصه مشبه رو میاریم بهش نسبت می دیم حالا می این لوازم خاصه منظور چی؟ یکی از لوازم خاصه مشبه رو می میاریم بهش مشبه. به مشبه نسبت موشه استعاره مکنیه یا بلکنه دو سه تا یک این استعاره را مکنیه یا بلکنایه میگویند گویند زیرا کنایکنی مثل رمایرمی کنایکنی کنایکنی یا کنا یک نو مثل دعا او یعنی فعل ناقص هم یایی هم واقی کنا یکنی کنا یک نو کنایتن هم کنایه است کنایت به معنای ستره هستش به معنای ستره پس مکنیه مثل مرمیه اسم مفعوله یعنی مستوره پوشیده شده بلکنایه هم یعنی بستر یعنی با پوشش تحت پوشش مخفی اون مکنیه یعنی مخفیه مستوره اینم ستر یعنی بلخفا بلکنایه یعنی ستر بلخفا این استعاله رو مکنیه یا بلکنایه گفتند چون لفظ مشبه به که جزء قویتر تشبیه است در آن دیده نمی شود و پوشیده است برخلاف اون مسرحه که بهش مصرحه می گفتند چون لفظ مشبه به توش تصریح شده بود اینجا اینو بهش میگن چی بگید مکنیه یا بلکنایه و خاطر که لفظ مشبهه به توش پوشیده شده است دیده نمیشه این تفسیر اول تفسیر دوم آوردن یکی از لوازم خاصه مشبهه به و نسبت و اصناد دادن آن به مشبه در این استاره قرینه می باشد قرینه می باشد بنابرین،, بنابرین قرینه استعاره مکنیه یا بلکنایه همیشه لفظی است برینش همشه لفظی است چرا چون ما یکی از لوازم خاصه مشبهه به میاریم نسبت میدیم به مشبه اینم مالی اما لوازم خاصه چی منظور چیه؟ یکی از لوازم خاصه حوش کنید ببینید هر چیزی یه سری لوازمی داره الان ما من انسان شما ما یه سری لوازمی داریم ما انسان درست شد موجود زندهی لوازمی داریم مثلا میخوریم خوردن جزء لوازم ماست اجزء نیازهای ماست دیگه جز لوازم ما راه رفتن جز لوازم ماست دیدن جز لوازم ماست درست شد اینا همه جزء لوازم ماست ولی یه سری از این لوازم خاصه نیست یعنی ویژه من انسان نیست مثل خوردن خب حیواناتم هم میخورد مثل خوابیدن حیوانات هم میخوابد راه رفتن اون هم راه بگید اما یه ویژگی ویژگی یعنی هم خاصه یه خواسته در انسان هست که در بقیه دیگه نیست میگن خاصت تو لا تو و فی غیرهی خواسته هر چیزی دیگه در غیر او نیست این خواسته است و وجیه در انسان مثل نطق میگن حیوان ناطقه یعنی عقل داره حرف میزنه درسته این ناطق بودن عاقل بودن این کار انسانه تنها حیوانی که عقل دارد که تکلیف هم بر اساس انسان خب این جزء لوازم انسان حالا مثلا حالا مثال دیگه مثلا در اسب لازمش چیه؟ خب اسب بگیم سوم داره خب اولاق هم سوم داره قاطر سوم داره بگیم دوم داره همینطور بگیم پوزه داره چشم داره گوش داره شکم داره نه جز لوازمش هست اما شیه کشیدن جز لوازم خاصه اسبه درست شد؟ لازمه خواستش چیه؟ عرعر کردن تبینه هر چیزی لازمه اون لازمه خواسته رو که بیاری متوجه میشن که منظور چیه الان شما تو خیابونم یه نفری داده بیداد میکنه برمیگردی بهش میگی آقای آقا چرا انقدر داری ارعر میکنی؟ یه هر شفته میشه و میاد یه میگیره رو میگیر و دعبا سریع میفهمه ای اصدار مکنی هست. چطور میگه تو من رو کردی به الاق اولاغ رو حذب کردی عرعر کردن که از لوازم خاصه الاقه برای من ثابت کردی پس این اصدار مکنی هست منو تو ذهنت تشبیه کردی به اولاغ درست شده نه؟ ببین لازمه خاص اینا مش میگن استاره بگید مکنیه یا بلکنایه استاره مکنیه یا بلکنایه الان نگاه کنید توی قاعده درس میگه مکنیه تون وهیه ماحوز ف وهیه ماحوز ف استاره مکنیه اونیه که حذف شده درست شد ما حضف فیها استعاره مکنیه اونیه که حذف شده درش المشبه به که جزء قوی تشبیهه حذف شده وش گفتن مکنیه در پوشش پوشیده شده چون اون پوشیده شد و رمز الیهه و اشاره شده است و رمز له یا رمزه الیه و اشاره شده است به این مشبهن به محظوف به شیعن من میگی الخاص سطح. یه الخاصه چون هر لازمش رو نمیتونیم بیاریم شد چون اون مشترکه اگه بگیم خوردن رو برداریم بیاریم خب خوردن همه دارن ما نمیفهمیم که منظورش اینه که تشبیش کرده به شیر ولی اگه بگیم گردیدن خب میفهمه میگیم یا آقا رو ببین چجوری همه همینها تشبیش کرد به شیر چون مال شیره. من لوازم الخاصه این میشه استاری مکنیه که من براتون دوزی دادم حالا سه تا مثال تو متن از میخونم بعد مثال دیگر همینطور تکرار خواهد شد و شما این دو قسم استاری که است، قسم اصلی رو کاملا متوجه میشید کاملا متوجه میشین. مثال اوله میگه که قال الحجاجو فی اهدا خطبی حجاج در یکی از خطبه که در شهر کوفه خونده بود و مردم کوفه رو تهدید کرد با این میگه انی فرض کنید که این داره خطبه میگه مردم از تو مسجد کوفه نشستن پای خطبهش میگه اینی لعه را میگه آهای مردم بای لام تحکید کرده بفیر به پیغمبر قسم میخورم اینی لعه را رعوسند من رؤوسی رو دارم میبینم سرهایی رو میبینم من یه سری سر دارم کله دارم میبینم قد عینعت، عین اینع یعنی رسیده آبدار شده مثل حلو که میرسه آبدار میشه زردالو میرسه آبدار میشه اونجا میگن عینع یا فاجعه فاکهتون یانه یعنی رسیده آبدار گفت من یک سری کله میبینم که کاملا رسیده و آبدار شده خب اگر یه میوهی برسه و آبدار بشه یعنی وقت رسیدنش باشه چیکارش میکنه میکنم؟ میچینن میر... چینن دیگه میوه ها چیده میشه چرا چون اگه نچیدن میپوسه از بین میره میگه من انی له رؤوسن قد انقدر اینم و هان قطاف ها هانه یعنی رسیده هانه یه یهین و وقت شده هین و هین قطاف قطفه یعنی چید و وقت چیدنشون شده و انی لصاحبها ها و قسم میخورم که منم صاحبشم هیچ صاحب میوهی حاضر نیست میورش رو درخت بمونه بپوسه با هر شکلی که شده این میور از درخت میچینه الان شما اینو میشسته بود یعنی کسانی که پای منبر و خطبه آقای حجاج ابن یوسف سغفی لعنطالله علی از این چی میفهمیدن؟ گروه بایده مردم من یه سری کله دارم جلو خودم میبینم همچین رسیده و آبدار که الان وقت چیدنشه منم صاحب این میبهام هیچ صاحب میوه حاضر نیست میوهش بالای درخت بپوسه شما میفهمید کله اینا رو تشبیه کرده به سیب و گلابی که رسیده به زردالو و حلو که رسیده به میوه یعنی من یه سری سرهایی میبینم مثل میوه های رسیده که وقت چیدنشه اون میوه هزب شده رسیدن و آبدار شدن که از خواست میوه است. خواست هیچی دیگه نیست از خواست میوه هاست جز لوازم خواستشه برای بگید روح ثابت شده علیه قد اینه اینه صفت رعوزنه زمیر اینه بخوره به روح. خب پایین نگاه کنید اینه, اینه از رو اذا عدرکه و نزجه زمانی که برسه و هان قطافها ها یعنی آنه آن یعنی هانا یعنی رسیده آن وقتش شده آن وقت و قطعه ها الان وقت بریدنشه یریدو انهو بسیرون به حال القوم میگه من شماها رو می مردم کوفه. گوفه انهو بسیرون به حال القوم منش شقاق و الخلاف از جهت دوگانگی و اختلافی که شما با حکومت درویی که دارید من شما رو میشنسم فی بیعت امیر عبدالملک بن مروان در بیعت با عبدالملک مروان شما دارید دوگانگی به خرج میدید مرافقان رفتار میکنید من شما رو میشناسم. فقوه یوحزه رو هم و داره اونها رو از عاقبت این کار زشتشون برحضر میداره که شما اینید خب الان نگاه کنید توی این مثل نرج ازن الال همسلت سلاست اخیره. برمیگردیم میگردیم به ستا مثال آخری و یک فی عنوز هنکم مثالا منها یه مثالش رو توضیح بدیم میگه بسه چون اون دوتا دیگر شما میتونید تطبیق بدید دیگه حالا من که توضیح میدم نتغییس علیه ما بعده یکیش رو توضیح میدیم تا تو خیاس کنی ما رو برو و هوا قول الحجاج به تهدید، ما ما همون قول آقای حجاج بن یوسف ثقفی رو لعنت الله در تهدید مردم کوفه برای تو میخونیم میگه انی لعرار رو اوسن قد عینت من سرغای رو میبینم که رسیده میگه فئن الذی یفهم منه و فئن چیزی که فهمیده میشه از این ها فئن الذی یفهم منه ان یشب بحر و اینه که تشبیه بشه سرها به چی؟ به سمرات به فواکه به میبه ها. فا فعصم کلام اصلش در واقع اینجوری بوده اینی رو رعوزن که از سمراته قد عینه من سرهایی رو میبینم مثل میوههای رسیده رسیده بودن آبدار بودن ولی میوه است. اون که از سمرات هست شده اون لازمه خواستش که قد عینه برا رعوز آمده صم بحوز فلمشب بهده و روسن قد عينت میگيم گوش کنید گوش کنید. میگه مگه مگه سر میرسه آبدار میشه اینجا اومده عینعت آبدار شده رسیده شده رو نسبت داده به سر این غلط نیست هیچ سری که نمیرسه هولو که نیست یه همین نکته استی که در واقع مبالغه کار اینجاست که اومده سر رو تشبیه کرده به میوه سر رو خیال کرده نوعی میوه است لذا آبدار بودن رو آورده براش ثابت کرده همین مبالغه است که یعنی گفته بله اون جاییم که برمیگرده میگه این آقا داره هره میکنه یعنی این آقا رو جزی از اولاها حساب کرده بعد ارعر کردن رو تونسته بهش نسبت بده تا جزئی از اونها حساب نکنه که میشه همین تا خیال نکنه این هم نوعی از الاق نمیشه که ارعر کردن بش نسبت ده تا اینجا خیال نکنه تخیل نکنه که سر هم نوعی میوست نمیشه اصلا آبدار بودن رو بهش نسبت ده لذا مبالغش همینه الان تخیل عن الرئوس بر اینکه خیال شده رئوس قد تمثلت فی صورت سمار مجسم شده به شکل میوه و روم زلل مشبه به المحذوف و اشاره شده به مشبه به محذوف به شیء من لوازمهی هی الخاصته به, نوع به چیزی از لبه. یک چیزی از لوازم خاصش و هو و اونم رسیدن و آبدار شدن باشد و کان المشبه به فی حافظه الاستعارته ها ولما کان المشبه بهی فیها زهل استعاره ته مانو من غلط نمیشه و چون مشبه هم به در این استعار محتجبن مستورن مخفیگن چون مشبه هم به در این استعار مخفی و پوشیده هست سمید استعارتن مکنیتن یا بلکنایتن چون مثل همین مثال مثال های بعدی و بعدی حالا مثال دو شو نگاه میگه که وقال المتنبی متنبی, متنبی میگه ولما قلت الابل الابل یعنی ابل و از مضافن یعنی الف لام از مضاف الیه یعنی شترانمون ولما قلت ابل وقتی شتران ما ته یعنی وقتی دیگه چیزی نداشتیم شترامون ته کشید و قلیل شد و لما قلت الابل امتتینا امتتاینا, امتتاینا امتتا یعنی رکب امتتاینا یعنی رکبنا سوار شدیم خب تا اینجا ما چیزی نمیدیم لما قلت الابل وقتی شطورانمون کم شد امتتاینا سوار شدیم الابن عبی سلیمان به سوی خلیفه ابن ابی سلیمان سوار شدیم الخطوب یعنی خطوبنا الافلام موز از از مزاتن خطوب جمع خطبه یعنی مصیبت مشکلات خطوب بدبختی ها شد؟ خطوب جمع خطبه یعنی مشکل سختی بدبختی مصیبت اینجاست که اشاره شده میگه وقتی که شطر تموم شد، شطرامون تموم شد، سوار شدیم به سوی ابن عبی سلیمان بر بدبختی هامون. یعنی چی؟ یعنی بدبختی هامون رو سوار شدیم رفتیم به سوی ابن عبی سلیمان. اینجا مگه بدبختی روز خطوب و مصیبت چیزیه که آدم سوارش بشه. منظورش اینه که بدبختی هامون باعث شد بدبختی هامون رو کول کردیم حالا به قول خودمون کولم بگیرید در واقع انگار بدبختی‌ها باره که گوشه نشسته میشه بدبختی هامون سبب شدن که ما بریم به طرف ابن عثیمون تا ما خوب بود کار خودمون رو می‌کردیم وقتی که شوترامون ته سوار بدبختی هامون شدیم و رفتیم به سوی ابن عثیمون تا بگی سوار بدبختی هامون شدیم رفتیم همه می‌فهمن بدبختی‌ها تشبیه شده به اسب شتور تشبیه شده به مرکب مرکب حذف شده یکی از خصوصیات مرکب سوار شدنه امزته برای خطوب ثابت شده بلا خطوب چیزی نیست که روش سوار بشیم پس خطوب تشبیه شده به مراکب اینجا خطوب تشبیه شده به مراکب مراکب حذف شده مرکب ها سوار شدن که از خصوصیات مراکبه برای خطوب اثبات شده شهستاره مکنی درست شد نگاه کنید پایین ام فتح اینا یعنی رکبنا ول خطوب یعنی الامور و شدیده کارهای سخت نه و بعد بدبختی گرفتاری یه لما از زتر ابل علی زمانی که نایاب شد شطور برو یعنی دیگه شطور نداشت ثروت نداشت لفقرهی به خاطر که بیچاره شد فقیر شد وقتی که شطراش تموم شد و فقیر شد حملت خوا الخطوب حملت خو یعنی اجبرت خو وادارش کرد وادارش کرد مصیبت ها علاقست هاز الممدوه به اینکه این ممدوح رو قصد کنی فکانت لهو به منزلت متیگیت نیرکبوها پس این خطوب کانت لهو این خطوب کانت زمیرش مغرب به خطوب این خطوب بود برای او به منزله مانند یک مرکبی که سوارش میشه گفت سوار شدیم بر بدبختی هامون و رفتیم به سوی ابن عوی سلیمان. یعنی بدبختی ها ما رو به سرعت برد بیشه ابن عبی سلیم اینجا شاید مثال چی بود؟ خطوب تشبیه شده به مراکب مراکب هست شده یکی از خصوصیات مراکب ویژگی هاش آه ویژگی خاصه یکی از لوازم خاصش که امتتعیناس برای خطوب ثابت شد اسناد داده شد استعاره مکنیه از قرینه هم هم امتتعیناس گفتیم استعاره مکنیه قرینه هست است مثال بعدی رو ببینیم و قالم متنبی گفته الم... ببینیم سیف و مریض شده بوده وقتی مریض شده بوده کسی رو ملاوات نمیکرد. خب تعطیل بوده همه چی وقتی خوب شده همه وارد خونه شدن اومدن سلام علیکو سله گرفتند و عطا گرفتند و رفتند متنبی همین رو ملاک قرار داد. میگه المجدو مجد یعنی عظمت. مجد عظمت المجدو اوفیه مجد سلامت شد صحت یافت خوب شد مجد خوب شد از اوفیته زمانی که تو خوب شدی ولی کرمو از جای مجده کرم خوب شد سلامت شد صحت یافت از اوفیته زمانی که تو خوب شدی الان اوفیته حقیقته خب سیفت دوله میتونه خوب شه مریض میشه خوب میشه اما مجد و کرم چجوری اوفیه مجد و کرم که خوب نمیشه عافیت یافت مجد و کرم ترجمش این میشه مجد و کرم عافیت یافت زمانی که تو عافیت یافت خب اینجا مجد و کرم تشویه به چی شده به انسان انسان هزف شده عافیت یافتن خوب شدن صحت یافتن که از خواست انسان انسان که خوب میشه دیگه از مریضی در میاد این رو آورده برای مجد و کرم صحب. یعنی مجد و کرم اینجا شکل یک موجود زنده انسانی پیدا کرده که از بیماری صحت پیدا میکنه. خوب میشه. پس مجد و کرم تشبیش شده به انسان انسان حذف شده یکی از لوازم خاصه انسان اوفیه آفیت یافتن برای مجد و کرم ثابت شد درست شد المجد و اوفیه از ظرف متعلق به است در وقتی که تو خوب شدی و کرم خوب شد در زمانی که تو خوب شدی بعد میگه و زال عن ک اله عهدای ک زاله یعنی انتقله خیلی توام است منتقل شد از تو به دشمنانت این درد عللم این دردی که به جون تو افتاده بود افتاد به جون دشمنانت میگه مادر مام عظیمم گفتم بدن دردت به جون دشمنت بیفته اینم هم همینطوره میگه و زال عن کله اهدای کلعنم این درد افتاد به جونه دشمن دردت به جون دشمنت بریزه می داره اینو و منتظر شد درد دستو به سوی جان دشمنانت نگاه کنید چون من میگه ولما کان المشبه به فیاظ نستعاره محتجبا سن میاد استعاره تن مکنیه و مثل زالکه یوغالو فی امتتعینا الخطوب که خطوب تشبیه شده بود به مراکب مراکب هست شده یکی از لوازم خاصش امتتینا برا خطوب ثابت شد و فی کلمت المجد والکرم هم مجد هم کرم در این دوتا کلمه مجازه در بی تاخیر که مجد و کرم تشبیه شده به انسان انسان هست شده یکی از لوازم خاصه انسان که عبارت است از آفیت پیدا کردن و خوب و سالم شدن برای مجد و کرم ثابت شده بحث ما تمام شد نموزجی دارد که این نموزش تکرار این درسه یعنی باز یه مثال های میاد تکرار میشه و همین مباحث دنبال میشه امشالله بحث نموزج رو هفته چی جلسه بعد خواهم خوند براتون که درس تکرار بشه بعد وارده درس بعدی استاره میشیم که همون استاره اصلیه و تبعیه است که امروز بهش یه اشارت و کردم هر درس همون موقع خلاصه نویسی کنید یاد بگیرید که تعالی از این درس لذت ببرید اینا درستیست که در واقع به شما آین زندگی میده و شما رو در اجتماع افرادی تیزبین میکنه که شما میتونید باطن کلام افراد و اون که تو دلشون هست از این سخنی که گفتند رو بفهمید به خدا می شما رو موفق و معید و منصور باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکات